جواب توتی روزی بود و روزگاری بود در زمان قدیم یکی از راجه های هندوستان دو توتی خوشاباز و شیرین سخن داشت که یکی را در ایوان و یکی را در اتاق از دیوار آویخته بود راجه در میان سرگرمیها و تفریح هایی که داشت گفتگوی این دو توتی را از همه دوستر می داشت او ساعتها پهلوی هر یکی می نشست و آنها حرفهایی را که آموخته بودند تکرار می‌کردند و حرف‌های تازه ای را که یاد گرفته بودند می‌گفتند و سرودهایی را که می‌دانستند می‌خواندند و راجع از آن لذت می‌برد یک روز برای تعمیر یکی از قفسها هر دو طوطی را در یک قفس جا داد چون مدتی گذشت توتی ها دعواشان شد به جان هم افتادند و آنکه تر بود با نوک خود چشم دیگری را کور کرد و آن بیچاره از درد حلاک شد. راجه همین که این را فهمید بسیار خشمگین شد. قفس توتی را نزد خود گذاشت و به او گفت ای ظالم بیانصاف تو میدانستی که من گفتگوی شما توتی ها را بسیار دوست می داشتم و در واقع شادی و خوشی من دو قسمت بود. نیمی از نشات و خوشحالی من از شیرین زبانی تو بود و نصف دیگرش از خوشزبانی آن یکی. تو با کشتن آن توتی نیمی از خوشی و نشات مرا از بین بردی این است که دیگر طاقت ندارم و الان تو را به جرم این گناه میکشم تا این کار برای دیگران عبرت باشد و دیگر کسی مایه دلخوشی کسی را نابود نکند توتی از شنیدن این اتاق و خطاب ترسید ولی برای تبرعی خودش مطلب خوبی به خاطرش رسید و گفت ای ارباب با انصاف به قول خودت هر یکی از ما یک نیمه از نشاط شما را تشکیل می دادیم. البته من بد کردم که یک نیمه از خوشی شما را باطل کردم ولی اگر شما مرا هم حلاک کنید با دست خود تمام نشاط خود را زای و باطل می کنید. آیا بهتر نیست گناه مرا ببخشید و حداقل نیمی از نشات و خوشی خود را داشته باشید؟ راجع از این حاضر جوابی و حرف حسابی توتی بسیار خوشش آمد و او را اف کرد.